أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لوازد من منهل القراني واطرا وحرك نشوه الايماني وعنق له بقلب بالي الذي يجلو القلوب برحمتي الرحمن قتل وزيد من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمتي الرحمن حمدا على المؤمن مركز نشرات الصادقين هن وتقارير وموعدها جهاد راع برائش ما تقديم من ماياد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد درسك فلن مشمّم مخيم رأى بخانب و شرط عمل صالح اول باید نوشون بفهمیم که عمل صالح تو شیعه مسلمان است و اینی می شه دیگه انسان مسلمان باید عمل صالح کنه اگر ببینید روز محشر الله به همین عمل صالح عمر انسان محاسبه میکنه اگر عمل صالح داشت الله قبودش میکنه و بر اثر خود نصیبش میکنه و اگر در اعمالش اعمال صالح نبود کلش سیئه بود بس تبقى می از کی انصار موجب دوزخ میگردن اعوذ بالله و اياه و ثواب عمل که الله جل جلاله به اعمال صالح ثواب میده که او باعث موجب رضای الله جل جوهو نمیشه که گناه نمیشه با او عمل الله تو سواب که مستحق جنت انسان میشه با او اعمال نمیده و دیگه عمل صالح عملی است که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم و الله رب العالمین ترغیب داره انسان را که عمل صالح بکن إن الذين امنوا وعملوا الصالحات بل العصر ان لا في خسر إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتوصف بالحق وتوصف بالصبر بس رسول الله صلى الله عليه وسلم بماه كي الله دوز در او عمل كنندي كي عمل بكونه بس عمله خد با عمل النيك بكونه بس يعمل النيك خدا از ریان از شرک و از اعمال زشت و نرواتی بکنه پاک بکنه آره صاحب کتاب در به خاطر قبولیت و نگاه شدن عمل صالح تقریبا 13 شرط را ذکر کرده که در عمل صالح این 13 شرط لازمی است. اگر این 13 شرط در عمل صالح وجود نداشته باشد، و عمل انسان انجام میده ما قبول نمیکنیم. مثلیک انسان در یک زرفی که سروخ باشه آب دریزه. آیا دیکتندن آب ظرف رو پر میکنه نمیکنه. چون سروخ است؟ شرط پر شدن زرف از آبیاست که باز زرف سروخ نباشه. آن وقتی که ظرف سروخ است چرا زرف, زرف نمیشه هرقدر آب واردش بیلی؟ دیگه به این خاطر صاحب کتاب میگه. که 13 شرط به خاطر عمل صالح لازمی است تو هر کدام شرطی که در این کتاب گذاشته است از قرآن و احادیث برش دلیل آورده که این عمل در اگر اینی شد در عمل صالح یک انسان وجود نداشته باشه او عمل صالح از این انسان در وجود الله قبول نمیشه اول یکی برادر محترم شرط اول در ایمان صالح امی است که عملی که انسان انجام مده در قبودیت ازو عمل که همان در حضور الله قبول شود شرط مهم امده کی ده او ضرور است ایمان به ایمان که انسان به الله ایمان نداشته باشه به روز ایمان نداشته باشه به با قران ایمان نداشته باشه به با پیغمبر علیه السلام و پیامبران ایمان نداشته باشه بس تمام اعمال صالحی که ای انجام میدهند در حضور الله قبول نمیشه چرا شرط اساسی قبولیت اعمال اینه در دین امن الله اعمال صالح المومن قبول می کنه با انجام دادن اعمال صالح الله از مؤمن راضی میشه کافه القدر اعمال صالح انجام بده چون به الله و به اقام برای الله و به کتاب الله و به روز آخره باب جنت و دوزا وبزنشدن بعد از من ایمان نداره پس هر قدر عمل نیکی که انجام بده هیچ اثر مرتبط بارش نمیشه این در حضور الله قبول نمیشه الله جل جله میگه من عامل عمل من عامل الصالح من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاه طیبه هر انسان چیزن است چی مرد هست که عمل صالح انجام میده خوش شرط که مؤمن باشن الله میگه من زندگی پاک نزیب شده زندگی که هیچ مشکلی در و زندگی وجود نیوشه باشه که تعبیر زندگی دنیا هم درو و میشه و تعبیر زندگی آخرت در هم میشه و همچنان در دیگه شد الله جل جهو میفرمه که من عمین صالحا من ذکرین او انتا وهو مؤمن فاولائی که يدخلون الجنة جنة ولا يردمون نقیوا ببینین چقدر اساس الله با شرط قبولیت عمل صالح در یہایت بهم هر انسان چی زن است چی مرد است چی عرب است چی عجم است چی سیاز چی سفید است چی بلند است چی پخش است به عرض نجات به عرض که است ke u amal saleh ra anjam mita va u mu'min bemushan shart esh iman besh khoda zahr va badan va nasab va hasab zarurat nist mu'min budan Bishu khoda zarurat ast ke insan mu'min bashad vaghte ke insan mu'min bud va amal saleh ra anjam dad allah akbar الله میگه علمی مردم هستن که جنت به اینا میراست داده بشن برای همچون انسانا الله جنت را تجهیز کرده و جور کرده کسی که ایمان و عمل صالح انجام داد و اون چی باشه چی مرد باشه الله جنت به اینما قسم انسان جده ولی اون انسان در دنیا یک برس قرش باشه ولی اون انسان در دنیا قوالیش این سیاه باشه که اصلا جور درعن نکنه به طرفش ببینه حسنان صورتن خیر اصل قبیح داشته باشه اما ایمان به الله و عمل صالح داشته باشه الله جنته به این انسان جور کنده الله نعمت جنته به این انسان جور کنده الله حور و لذت و خوشنمایی خود به این قسم انسان جور کنده الله دیدار خود به این قسم انسان جور کنده الله غلامان در خدمت این قسم در جنت قرار میده این قسم انسان هنوزیمیش کی کسی که عمل صالح کرد و ناو پدرش قافر بود و ناو مزدور بود و ناو غلام بوده از از از, از و اجداد و از چند پیش تینا غلام بوده باشه اند مزدور مردم بوده باشه و ناو غریب بوده باشه و ناو حسن و قیافه و قواره مان و زندگی و جایداد دارایی نداشته بوده باشه اما ایمان و عمل صالح داشته باشن. که در دنیا کسی در یک اتاق نخواهی که بشینه اقدار بهش مردم موقف پایین داشته باشن، اما تعلق دل از انسان با الله ساخ باشه و اعمالی با که انجام میتن به خاطر خوشنودی الله انجام میتن و به الله ایمان داره الله میگه ما جهنم داریم کسی که در دنیا کسی در یک اتاق جازش میتن الله ما در زیر هرش بishops هو إيمان وعمل صالح معتبر. إيش شرط أولي إيمان؟ شرط أولي قبولية أعمال صالح وإيمان. وتجد الله جل جههم كه ومن أراد الآخرة وسعى لها ساعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هر هرب كسيكي از خداوند زندگی آخرت را می‌خواد عزت را در میدان محشر می‌خواد عزت را در جنت می‌خواد دیدار الله را می‌خواد در زیر عرش الله در جنت ادز زندگی می‌خواد و به خاطر ایمی کمای کردن عزت و به خاطر کمای کردن زندگی باد از من به خاطر کمای کردن دیدار الله در دنیا کوشش می‌کند خب ببینوا شرط در ار عمل میمان است که انسانی که با پیغمبر علیه سلام ایمان نمیداشته باشن یهود نصران میگن نحن ابناء الله و احباءه ما بنده خدا چی میگه بچه های خدا و دوستای خدا هستیم جنت به ما خرد شده ما ماجد و زخم نمیدیم علیه خود الجنت ایلا من کان و یهودان و نصران و وزعم خود بگن که جنت تا که یهود و نصاران نشی جنت داخل شده میده ای دعای از این میکنن اما الله با میگه که کسی که ایمان و عمل صالح میکنه کسی که اراده در دن آخرت داره و جنت رو داره دیدار الله رو داره و بخاطر خاطر از ازیک سعی کشش میکنه تا به پیغانبر ایمان نگره تا به قرآن ایمان نگره ممکن نیست که اونها آن جنت برن رفتن از عنا و جنت چنان دشوار است مثل داخل شدن شطر دستروح سوزان ای بُن شرط اول قبولیت عمل صالح از این ما که اگر کس می خواد که الله عمل نیک از این قبول بکنه عمل صالح از این قبول بکنه پس برای این انسان لازم است که چی بکنه ایمان به الله بیا سبحان الله بدون ایمان هیچ عمل انسان ولو سغیر باشه یا کبیر باشه قبول نمیشه دو این برادران شرط ده خیلی مهم است و خیلی اساس است الله جل جلاله موشمار از ای عمل از ای شرط محروم نسازد اخلاص الله اکبر یک انسان به الله ایمان داره که الله جل جلاله خالق کل کائنات است و معبود کل کائنات است و عبادات به خاطر رضای الله باید انجام داده شود به جنت به دوزه به قرآن به رسول الله صلی اللہ وسلم به دیگه انبیاء به قیامت به همه ایمان داره اما اعمالی که انجام میتنه درو اعمال خود نما میباشه در او اعمال باوجوده که الله رضایتش را طلب داره در دنیا هم خود را متره به او اعمال میسازه و به او میخواهی که هم الله رو راضی بکنن اما مردم را راضی بکنن هم به و عمل میخوای که الله رو عبادت بکنن اما به و عمل میخوای که مردم تمجید و تعریف عزیده بکنن پس این انسان اعمال خود، اما تو زایی ساخته مثل انسان به ایمان اومان خود رو زایی ساخته هم بابا اکبر مثل چه خطرناک است abbradira این شیطان اول نمیذاریت ایمان بروید زمانی که تو قادر به این شدید که ایمان بیوری، الله سرالوت کنید ایمان را نصیبت کرد آن شیطان باید از ایمان کوشش میکنه که در هر اعملی که تو نیک انجام میتیی، در رو داخل کنه الله اکبر، الله انجام میتونه اولا نمیمانی نماز بخونی، وقت نماز خونی میگی سه خوب نماز بخون که مردم نگویی که انسان نیک از چی لقا نماز میخونه پا مین یک نماز خوندن نماز در یوکه نماز تو اخلاص ازش سقوط کرد و لوثلقه بخونی الله روز مشهد برات میگه تو به من نکردی تو بخاطر ذکر کردی که مردم به تو خوب بگه بس مردم اگه خوب گفتی یا بد گفتید براز مردم ثوابت بگی تو فقط ما انجام ندادی تو در عبادتی که به من لازم بود به مردم راضی کردی به عبادتی که مراضی میشنن تو به عبادت راضی مردم نمیخواستی بس در مشهد پیش می چیز خیلی خطرناک است بعد از ایمان برادران خطر مقتدرین و مظطرمین چیز بر اعمال انسان مثل تزاب است که سر یک چیز نیک پدش عملش از بین بره تزاب اگر سر هر چیز بندازی خاصیت او چیز از بین میبره بالاخره او چیزی که به خاطر کدام نفع جرد شده اون نفع قدر است میتاد اگر سر خطاب بندازیش او قضا از خوردن میپره اگر سر لباس بندیش و لباس از پوشیدن میبره این یه قسم اخلاص گذاشت اگر عمل موسی شد و ویژت داخل شد و عمل که با خاطر کدام نیت انجام داده شده و, و نیت داشت خراب شده و عمل با خاطر نزدیک خدا که انجام داده شده و در او اخلاص نبوده و ویژت شد الله از او عمل برزید نمیشه مست تیزاب است برادران مست تیزاب الله جل جهمی که فمن تال يرجو نقاء ربه فانيعمل عملا صانحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Her insan yang diperanjama adalah tidak. Subhanallah, kita tahu apa yang diperanjama adalah yang diperanjama. Yang diperanjama adalah yang diperanjama adalah yang diperanjama. این تمنا داره که الله امروحی عزیز روز مشهد دیدار کنم این تمنا داره که روز محشر ملاقات از امروحی الله شاه صحبت از امروحی الله شاه در بین ازی و الله حجاب وجود نداشته ما شکتا الله صحبت بکنم دیدار خدا رو بکنم که بزرگترین نعمت در جنت دیدار الله است هر کس میخواهی که دیدار الله رو در جنت بکنه، پس بر از لازم است خود الله میکی ani a'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada amal salih anjam be ta dar anjam dadan amalan salih ba ghayr az razae khoda dige hich chiz naghad na ta'lim madam inke madam tilik mikonan ya nemikon ba khodeshon madam in dar anjam dadan amalan salih maqsadash dunya maqsadash mardom maqsadash ejtemai mardom nemibashe ke mardom باش یعمل من انجام بده که من مدن بد نگوی با شما یعمل انجام بده من تعریف بکنن تمجید بکنن بس الله فقط هر کس که دیدار منو میخواد هر عملی که انجام میده و عمل تنها ما مقصد باشه هیچ کس دیگه مقصد نباشه تنها دیدار به مقصد باشه دنیا مقصد نباشه ببینین چه کوضی الامر می رنه انما ببینین اقدار واضحی جامعه انسان کمه به یه دقیق شه مست که ما در محبت الله جرب کردن محبت الله گفتیم که انسان یکی ازید قرآن را بشینه به تدبر بخوانه معنای فکر بکنن و به صوت حسین ای انسان محبت الله رو جدنه آلی ببینید الله چکه خوب میگه وما امیلو فمن کان یدجو لقا ربی هر کسی که دیدار رب به خدا ارزو داره پس به ارزو چی دازم اسفل بکنن؟ فلی اعمل عملا صالح Allah sendiri. mego yed dastur Allah ast. Elvermaish Allah ast ke ba bande khod be ke har kas ke yang ke makatish didar konad har kas ke shayegh didar ma ast Rasulullah (s.a.w) hamishe da duae hobin Allaham zasqni lidda an nazar ila wajhik al-kareem. Allaham zasqni shauqan nazar ila wajhik al-kareem. Ibhtarin duaas va ibhtarin ni'mat dar jannat-e. Agar ye jannati khul Allah barash beda. اما دیده خدا برش نده در جنت از همه جنت یا کرده خود زلیم فکر میکنه خود کم مرتبه فکر میکنه چون دیده ها خدا آل برش نصیب نشده آنه بینیده الله برش میگوی که فمن کانه یرجولی قارم بهی کسی که تمنا و آرزوی عزیر داره که با مرای الله ملاقات کنه الله حکم بی بی برادر خود یه رسول چکو دیده ها رو رسیده خودی سیکن مجلس الله رسیده الله میگه هر که در دنیا یعنی در دلش یارزوست که من خدا ملاقات کنم من خدا دیدار کنم من باید امره الله گب بزنیم باید آرادی گب بزنیم به پین من الله اجاب وجود نداشته باشه پس چی الله میگه؟ من میخواهیم بکنم امراش ملاقات خیلی شروط داره شروط من انجام میده من که کتو ملاقات. فنی اعمل اعمل اصاله دیدار من مناقات ما با عمل صالح, صالح انجام بشه و با شرطی که عمل صالح تمام به من انجام داده شد و عمل صالح دنیا مقصد نباشه شوقی مقصد نباشه مقام مقصد نباشه مرتبه منصب نباشه به خاطر خودنمایی و ریا در بین اجتماع دیگه مقصد نباشه تنها به خاطر من انجام داده شده چرا دروستون میگه شما نوابت تن کوشش کنید در جای بکنید که غیر شما رو علاو ببینید چرا دنیای خلورد با علام. دمی دنیا مدلیسی رو پیدا بکنه که دومندس غیلی الله باشه واسه نامندس دیدار خود در جنت رو انسان در عمال که از مردم دور باشه سبب یا پیدا نو بشه فلی عمل عملا صالحا و لا یو شریک بی عبادت ربیه احدا فس عمل صالح را انجام بدهن و به امره الله در عبادت الله کسی دیگر شریک نکنه نماز یک عبادت است بعدی الله را رضایش خواسته شد. رضای مردم خواسته نشد. هر یکی اداس، بعدی الله را رضایش خواسته شد. مردم رضایش خواسته نشد. بعدی انسان یاد شد که الله مرا تعیین کنه، الله مرا مقام بده. ما بیشی الله محبوب شوند. دیگر انسان در عجله خود اینیا نداشت بجی که ما بیشی مردم آجیس بشه و ما مردم بعدی آجیس بگیره. ما بیشی مردم یک انسان نیک مردی اگر کس درامی عبادت خود نیتش خدا مود مردمم بود خدا دوام را بیزارد. الله میگه من شریک بزارستم کسی که در یک عمل من شریک میکنه و بندر شریک میکنه من شریک بزارستم از شرکا بزارستم روز مشهر میگهم تو میفهمیم اونفر که دو همار توی روز آر برنو مرازی چی کلمه تن بر جلحت برده میداریم دوزخ نجه انا دیگه انسان امام انجام میگه که خاطر که معظم روزی شد در میدان معشد حضور خداست الله الان تو صحیح نمازای خوب خوبش میخوندی روزای خوب خوبش میتی زکات خوبش میدادی حج خوبش میکدی اما ببینید برادر در اولین کسی که در دوزخ انداخته میشه بهترین انسانای هدیه دنیا میبشه انداخته میشه ببینید البته بهترین اعمال و انسان ها انجم میشه باشه اما به خاطر خدانیه دوزخ سر سر مجاهد سود دو زخم سر عالم کن میشه دو سر سر سخی کن میشه. از این تا وقتی به حدیثی که میگه وقتی وفات او کرده وقتی که وفات شد میگی سه بار چهار بار اراده کرد که حدیثی بگه باید مجددا که میگه حدیث یاد میکند توقف میکند. سعی میکنند مجلس را سوند که حدیث میشیندی حدیث دیاره مگز مجلس را سوندند چیکنده ما بر ما نگم ما هی توجه دیم شدیم Tasyululah sana Allah Sama Miku ya. Ruzul Mashaar Mujahidin Allah Miku ya. Dari Ruzul Madmim Mujahid di antara semua amal zahroh dan sunah dalam Islam jihad ini. Noktah asas dan penting dan penting dalam Islam dan jihad. Semestik itu, syuturku hancur. Karena mana noktah asas dan penting dalam Islam dan jihad? Semua noktah itu tidak بس وقتی که جهاد نقطه اساسی اسلام است که از نه ماه روزه حج زکات دین حدود احکام حفاظت میشه اللہ اللہ مجاهد هم خود مقصدی یک موقف پیش نداره الله اول مجاهده در زخم نداره چون من نداره اونم مجاهده الله در زخم نداته که جهاد به خاطر چوکی جهاد به خاطر مقام جهاد به خاطر منصب جهاد به خاطر اینکه که مردم غیور بگویش مردم شجاع بگویش مردم بهادر بگویش مردم بگویش که اینی کسی ایست که واقعا از الله و دید الله اینی تعریف مردم رو در اعمال صالح خود فلا الله چکه خوبش میگه که کسی که اراده دیدار الله جل جهور دار اعمال صالح بگن ولیش شو بی عبادت رو بی احدا اینا این جهاز یک عبادت از در عبادت اگر کس ترجیل مردم رو شامل نکنه این در عبادت ای یقینا غیر الله شریک کرده اول مجاهده الله مندازه برش میگه که بیا تو مجاهد سه چی کردی؟ میگه الله در ایتی جنگ کردم قتال کردم گفوار کشتم تا به حد اگه من زنده بودم از دین تو دفاع کردم در فلان جنگ در فلان جنگ در فلان جنگ, جنگ اشتراک کردم الله میگه که از زفت درو میگه تو کل قرار رو به خاطره منع کردی بودی به خاطره زیگه بودی که مردم تو ره بهادر غیلتی شجا دلی بو گهمدن تریسفت بکونن به خاطر چوکی به خاطر ورسوال شدن به خاطر امر شدن به خاطر واری شدن به خاطر منصب دنیا کرده بودی ته دنیا رسید با من نه دودی کولا چی بید اول انجام ندی که موالی شو جهاد کینی که مو ورسوال شو جهاد کینی که من مردم قمندان سه بوگوی برای مردم شجاع دل بوگوی به نیت جهاد کدی مله نظرت نبودو حالا مزی عجبت نمی خو برید نمندم تجید دوزخ میکن ملائک کشش میکنه بروی دوزخ میکنه دوزخ سرازمی مردم گرم میشه دویم علم میتر با قاریزاییم چی کردیم؟ میگه ای الله کتابتی یاد کردم احکام شریهتی یاد کردم علم فرا گرفتم عالم شدم مدرس بایدا مدرسه مدرم تردیس کردم مردم تعالیم دارم خیلی مردم از دست ما فارغ شدم کس حفظ قرآن کرد کس علم دین یاد گرفت بی خدمت بودین که والله من کاذب تو رو تو این کده کارا را کردی اما تو این کده ما مقصدت نبود مردو باسان ما خوشی من دیدار من مقصدت نبود خوشی و دیدار مقصدت نبود اعلی بر عظمت مجلس وی مردم نه تو رو جنت نمی دن نه گناه ببخشین این پاک کردن گناه غیر خاصی الله است کس دیگه کسی بخشیدن میدانا پیغمبر هم کسی بخشیدن میدانا که حقوق الله واش میدان معاشت نبخشید پیغمبر بخشید Besar syafaat mereka, kerana benda tersebut syafaat alam yang berusaha bayangkan. Ras bayi kau itu ilmu yang penting tu sahaja. Saksi memang dalam kesahihan. Si kedi, saksi mega mazakat, kadem khairat, kadem pulju, kadem mazatju, kadem mazjudju, kadem radibaratir, kadem. Eh, alam yang kacat kat duduk. Sahi si keputusan, memilih si اما دا امی امی ده انجام دادن می عملت من مقصرد نمیدیداره من مقصرد نمیدیداره چی کمو این مسائل برادر ده تمام می عمل مقصدت تو چی بود که مردم از من خوشا من مردم نیک بگوی من مردم خوب بگوی مردم میگم خوب گفتید بعد دو تا اداره از مردم میگی بعد دیگه بحثه انا من میگفتن کی دو, دو زاق میکشه جنت مبارک نمی دم دو تا دو زاق ما کسل نمی جت می دم که دنیا هر عانه به من بکنه تو عمل با مردم میکنی الله أكبر أعازني الله وإياكم من هذا الله تذكر مك وما عمل أمر كرد نشر إنسانها إلا مقربا يمر كرد نشر ليعبد الله كنها عبادة الله لبقنا المخلصين بإخلاص مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيمة أعمل صالح بإي خاطر أنجم ددا وأعمل نشر بأنجم ددا عمل صالح بإي خاطر, خاطر كي اعمال صالحه تنها خاطر خوشی خدا انجام بدن و ما از شرک از ریاض از خودنمایی خودپرستی به طرف توعید و اخلاص بی خاطر عمر شنن و اینها انجام بدن نماز دار و بدهن زکات را و این می از دین محکم و دیگه جایی میگه الله پک حنفاء غير مُشْرِكِينَ بِهِ معاقل بطرف خدا و بمرأة خدا كسر شريك نخذ يعني كسر كدر اعمال خود امر رضاية الله رمي تلبه امر رضاية أم مردمه امر خوشي خدا رمي تلبه امر تعريب مردمه انسان ذا يعمل امر الله رخش مي کن امردمه ذا يعمل خدا ومردمه شريك کرده الله عزي عملاتي روز محشر بإزارة فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah جلد جرحون عبادت بکنه و Allah فضلیات به اخلاص بزنه و تمام شرائط دین و بخاطر الله انجام بتن که تمام حمد سنا بخاطر او ذات عزقره به کل عالم است و عالمی که دو میخوای لازم کنی او بنده الله او مخلوق الله است به خاطر پرستش الله پیدا شدی به خاطر عبادت الله پیدا شدی به خاطر خوشی الله پیدا شدی تو در عبادت الله مقصد تعریف و تمجید و خوشی مردم مرتبط نباشه الله جل جلاله که ببینین علی خودی دلائل شما شنیدین که الله با یکون دلائل از قرآن که الله قبولیتی یک عمل را زمان میکنه که او عمل به خاطر الله جان یعنی شرط قبولیت عمل صالح اخلاص است. کسی که در خود اخلاص نداره در او وجود شد خودنمایی و سمعت بایداشد او عمل اگر بسته شد انسان در تعجید استاد شود، در عملش یا اگر انسان کل عمر در جهاز تیر کنه در عملش نیتش ای باشه مردم گیر بهادر بگویم، مردم شجاع بگویش مقصدش دنیا باشه ایت بیشه خدا قایده یک, یک, یک دان و تویم برادرهای محترم سیوم شرط قبولیت اعمال صالح ادبای سنت است چیست؟ که انسان هر عملی که انجام میته هر نیکی که انجام میته به طریقه انجام بته که رسول الله انجام ده اگر انسان روزی میگیره اگر انسان زکات میته اگر انسان حج میکنه اگر انسان نماز میخوانه اگر انسان هر عملی نیکی در اجتماع انجام میته به خاطر کی؟ Allah dada di shabat Allah az o'o -e amal razi mi shi kip berdarik ibn Pahim Bahar si menjauh dan shabat ya que amal Pahim Bahar alaihi salam tuas salam, salam nakerde ma minkunim Allah wa amali, ki al amruna, Kasi, ki, amal kisika amal raha anjauh bento beniyat salih wawo amal raha Rasulullah nakerde bache ee phech khudar mazlut is ee phech khudar qabuliyyat إنه يمكن أن تقوم بإمكانكم كما تقوم بإمكانكم الله قبول يجب أن تتعافي على رسول الله قال حل ننبيكم بالأخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعات سورة الكهف الله يمكن أن تكون أسرعين الإنسان أسرعين أعمال و أعمال إنسان كأنسان عن جنبة. وی تفکر میکنه که آمان من خدا رو راضی میکنه، اما او آمان پیغمبر خدا نکردی از جن خود جور کرد. از جن آمان جور کرد که پیغمبر نکرد این میکنه، از جن خود دین جور کرد. الله میگه اخسرین، از آمی کده خاسر ترین زیان ترین عمل امومنی است کسان با خاطر تقریر الله انجام میده اما ودم پیغمبر نکرد. یا جن خود جور کرد میگه یا ترین عمل و این ترتیب می کنه که ما قراره نیک می کنه در حالی که دیگه کار وا دیگه میشه در حال عمل بوبد با سنت مثلا نماز میخونه به پیغمبر واسه چی رقم میخونه روزه میگیره به پیغمبر واسه چی رقم میگیره زکات میده به پیغمبر واسه چی در اجتماع زندگی میکنیم به خاطر الله ما من از یک بندی الله در اجتماع زندگی میکنیم بین اخلاق میکنیم به پیغمبر شخص اخلاق, اخلاق چی میگوی امروز بنده میگه اگر این سوخت خید بنابراین چیزی که یعنی اخلاق نیست اخلاق دروغ نگفتن اخلاق میگه انسان چل با مردم نکردن مردم رو دوکن ندادن با مردم غدر و خیانت نکردن مردم رو غیبت نکردن مردم رو محترم نکردن مال مردم رو دزین نکردن نیکو اخلاق است دز چربزبندر بس می با اخلاق است اخلاق شد می دز دز اخلاق است دروغ گفتن که پای دز نمی بسه اخلاق سی اخلاق از. بدترین اخلاق <تصفيق> دروگوی است بدترین بد اخلاقی دروگوی است نگو بگی خاطر حالا عملی که انسان انجام میده شرط قبولیت است عمل نیکی است که به طریقی پیغمبر باشد. عمل نیک است اما به طریقی پیغمبر انجام داده نمیشه و قبول نمیشه نماز عمل نیک است اما چی که پیغمبر خانده ما نمیخونیم و قبول نمیشه